<تصفيق> آگهی بازرگانی آیا در مدرسه از دست غندوی و بیر احترامی های کلاس پنجمی ها لبتان به جانتان یعنی چیز جانتان به لبتان رسیده است؟ آیا کلاس پنجمی ها ساندویچتان را که مدر گرامیتان با زحمت و خون دل برایتان درست نموده است از شما میگیرن و کوفت می نماین؟ آیا از حمل کیف و سویر تجهیزات و عدوات جانبی ایشان در مسیر مدرسه و انجام دادن تکالیف به جای ایشان خسته شده هید دیگر نگران نباشید مرکز مشاوره و آموزشی نوباوه تلاحی مستقر در کلاس سوم جیم طبقه دوم در خدمت شما میباشد ما در این مرکز به شما یک سری فن و تکنیک آموزش می دهیم که به توانید با بالایی های بیتربیت برخورد قهرمانانه به نماقید دوره های رزمی ما شامل زرب زدن به نقاط خساس یک کلاس پنجمی، تیراندازی با خودکار و لخت زنی پقلید صدای بروسلی برای ایجاد رکب و در دل بالایی. ها و در نراید اگر اینها جواب نداد ما به شما بالا رفتن از دیوار درخت گیر چراغ برق پرچم نسل شده در حیات و هر چیز دراز و بلند دیگر و تکنیک های ماندن در ارتفاع برای مدت نامعلوم را آموزش می دهیم. همچنین شما میتوانید با استفاده از تکنیک ساندویچ خود را قورت بده کلاس لهغ های سیری ناپذی را که برای گرفتن ساندویچ مادر گرامیتان دورهتان نمواند نکام گذارید. آقای رای و بوز ای بوزاره پانی